ای دل چه نصیب تو همه خون شدن است، احبال تو هر لحظه دگرگون شدن است، ای جان تو در این تنم چه کار آمده ای، چون آقابت کار تو بیرون شدن است. امروز تو را دسترسی رسی فردا نیست، و اندیشه فردات به جز سودا نیست، زایه مکنین دمردلت شیدانیست، که این بای ای عمر را بقا پیدا نیست. از هرزه به هر, هر دری اینه می تاخت، با نیک و بد زمانه می ساخت، از تاسک چرخ و کعبه تینه تقدیر، هر نقش که پیدا آن باید باخت. این کوزه چومن آشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است، این دسته که در گردن او می بینی، است که بر گردن یاری بوده است.